یکیت گفتن رل بنویسی همه کن از نوش آق بکشاید دیسی دو به مرگ همه آب پا همه مخبشگان زلف دکار بکشاید در میخواب نببستم خدا یا مفصم که در خواب نیجی تزدید رو غیاب بکشاید خواب این طرق کداری تو ببینیدی فردا کسی زون ها چه بعد، این غذر خیلی درجه یکی است و از آخرن، والا دوزگار محمد مزفری است. خیدر شاه شجاع و اون مردی که شاه شیخ ابو اسحاقو داد کشتن و بعد خودش هم شروع کرد آدمی که در جوانی انواع و اقسام و کرده بود یه دفعه آبد و زاهد و مسلمان شد خب حالا اون سر رو بخوره اشکال نداشت ولی سعی کرد همه مردم با به خودش مسلمان کن خود. اون وقت میگه که این آدم آدم بوده که میگه دا می که دشنامها میداد که مکاریان مکاری این چاروا قاطرچی مکاریان و استربانان از گفتن آن شرم داشت یعنی بعد هم فروشهایی میداد بعدم مشغول خوندن قرآن بود قر کمرش میزد یه کسی رو میوردن که پشتنی بود. هم میذاشت این می‌رفت سر بابا رو دستی گل می برید در بر میذاشته و می بریمتون دنبال شروع میکرد داشت که مگس داشت آدم ساوب وقه با بود که برچه از ترسش بالاخرهناچار شدن که خودشون کو بکنن بر ضدش وگیرن به زندان تو زندانم دست از توته بر نمیداشت تا چشمش رو میر و اون میر کشیدن رو من باید به شما بگم جنایت رو در اون روزگار به صورت یه هنر زیبا در رو گذاردن کنم که میلی رو اونا کار نمی کنیم سکی بعضیش یکی میلی نقره درست میکردن و زندانی یا اون کسی که مستوگه مجازات بود میگفتن و رو باز میگه میلشتن و این میل رو میزشتن در حوابت شدید که سفید بشه بعد این رو از یک میلیمتری یا نیم میلیمتری جلو چشم این آدم رد این حالا چجوریه باید نمیدونم از طبی یا اینا که این چه صدیمه میزنه نمیدونم ولی چشمش چشم سالم عادی این چشم مردم عادی بود فقط دید نداشت. و اگر یعنی از ریخت نمیداختن صورتو مثلا چشم درد نمی‌آورد. چیز نمی کرد و اون وقت اگر اون میرغذب، اون درشخیم با اون کسی که این کار باش میکردن بر سر لطف و مرحمت بود به جای 2 میلیمتر و از یک میلیمتر یا از یک میلیمتر راید میکرد و اون وقت این آدم باز دید نداشت اما افراد رو مثل یه سایه میتونست تشخیص بده یعنی یه ربه چشمی یا یک دهامه چشمی داشت و پدرش عباس عباس سلطان محمد خداونده از کسانی بود که چشمیل کشته بودن شاه اسماهیل دوم که برادرش بود داده بود چشمیل کشته بودن ولی چون یک کمی اصطلاح میل رو دورتر گرفته بودن بعد از اینکه شاه اسماهیل مرد ناگهان این دعویه چشم داشتن کرد ولی خب آدمه آدم حلیم سلیمی بود، داده بود که به درد پاکچایی در حقیقت نمی خورد و یه چند سالی بود به نام سلطان محمد خدا و بعد چه اپاس براسه ردش کرد و خودشون رد کار این محمد بن مبارزدی محمد مزفتری رو چشمش رو بچهش میل کشید شخص جا یا آن روشن بود جهان بیگ نشته دو چون بچه میگن نور چشمی بیگه نور چشمی یا که روشن بود جهان بیگ نشته دو میل در چشم جهان بیگ نشته مالا حافظ من این رو تو قطعات بیارم این قطعه به این مناسبت این جالبه خیلی ارز کنم که این ببینید باع عرض کنم که شاه غازی اولش اینجاست دل من بر دنی و اسباب او جلد دهم حافظ استاد خانلری صفحه 1071 دل من بر دنی و اسباب او زان که از وی و وفاداری ندید کس اصل بینیش از این دکان نخود کس رطب بیخار از این بستان نچید می‌بینید که به خلاف غزلاش بگید، ساده است این هر به ایامی، چرا بیبر چون تمام اخروخت، بادش در بنید بی تکلق، هر که دل در بینهات چون بدیدی، خصم خود می‌پربری شد هر که دل به دنیا داد، می‌گه دشمنش رو پربری شاه غازی، خسروی بیتی سبتان اسم چم گوشته بود، غازی، چیز رو مبارز محمد استرسته بود شاه غازی و یه چیز زشتی حجم زشتیه باید که باز اشاره به همین شاه غازی خسروی آنکه آن از شمشیر رو او خون میچکید ببینید هیچ مرد نیست گه به یک حمله سپاهی میشکست گه به هوی قلبگاهی میدرید سروران را بی سبب میکرد حبس گردنان را بی سخن سر می برید گردنان یعنی سران همچه گردن هم بالاترینه بعد از سر گردنه دیگه همچه که سران میگن و یعنی رؤسا گردنان هم هم دارد. گردنان را بی سخن سر می بورید. از نهیبش پنج پنجه شیر در بیابان نام او چون شنید آقابت شیراز و تبریز و عراق را مسخر کرد وقتش در رسید آنکه روشن بود جهان بینی‌اش به دو میل در چشم جهان بینی‌اش این آدم که بسیار آدم بدنامی است و سالوس و حقوق بازو در عین حال هم وقتی که تسلیم می‌انداخته و قرآن می‌خونه و چیز می‌کرده از دروغ گفتن و راست و و توهت کردن هم هیچ پروایی و عبایی نداشت به همین دلیل هم حافظ در بیت شیشون غزل میگه در میخانه ببستند خدا یاد من پستم که در خانه تذبیر و ریا بکشایم میخانه حالا خوبه یا بده به حال گروه میگن خوبه گروه میگن بده اما در میخانه رو ببندند برای اینکه در خونه ریا رو باز بکنن ریا رو من در سنوزه مناسبتی بود و حرف مفصلی راجع بیزدن که ریا چیست و چه جوریه و کیفیتش رو عیبش که یکی از بزرگترین گناهان در اسلام که اصلا میگن شرک یعنی شریک خواهل شدن برای خداست ریا رو میگن شرک خفیه شما نماز باید برای خدا بخونی اگه یه وقتی دیدین آدم نشسته یا چند تا آدم نشسته شما داشت نماز بخونی تورش بدیم یه غجی پینا بگن بح بح بح چقدر آدم مومن مقدسیه این در حیرت اون آدم ها رو شریف خدا کردیم برای نماز کنده این است که بسیار بسیار بد و بحث بسیار مفصلی کرده قضالی در اینکه این که ریا با احسان داره و گاهی آدم خودش اصلا نمیدونه ریا میکنه و حال این که داره ریا میکنه اینه که باید خودش رو مرتب آزمایش کنه که ببینه یه وقت اسیر ریا نشد هر حال. آقای مبارز الدین از خصوصیاتش یکی هم ریاکاری وجود رو مبارک میگه باشه داری دل, دل دو بعضی نسخه ها هست بود آیا. بخ، فرق نمی کنید. کنم که اینجوری که معروم خانداری نوشته سه تا و سه تا شش تا و چهار ده نسخه هست فقط نسخه اساس معروم غزبینی. یعنی نسخه متعلق و مرحوم خلقهالی به ودایه است. یک نسخه دیگر هم هست به ای دل هشت نسخه هست باشده باشده ای دل که در میکده ها خودشاین گره از کار فرو بسته ما خودشاین یعنی آیا ممکنه چنین چیزی؟ میکده کده یعنی خان خانه خانم یعنی اتاق هست منتها این کده به صورت پیشاوند یا پساوند یعنی تنها کده استعمال نمیشه یا به صورت پساوند میاد مثلا اینجا میکده بوت کده مثلا اخیراً ساختن دانشکده قبل بوده آتش و امثال اینا این به صورت سوفیکس به صورت پرتاوند به صورت پیشاوندن در کت خدا و کد بانو هست قدیم که مردم وضع اقتصاد به این توسعه نبود ما زن میگرفت و یه اتاقی داشت و بچه‌هاش هم تو راه میافتادن و بزرگ میشدن و همه بودن دور هم بودن تا وقتی که دختر می‌خواست شوار کنه از اون خونه میرفت بیرون یا پسر می‌خواست زن بگیره یه پسر که با زنش نمی‌تونست که تو اون اتاق حال باباناشو رو بعدا به خاله یه اتاق دیگه میدادن بود بنابر این اون خانم میشد کاد بانو یعنی رئیس اون اتاق صاحب اون اتاق مردم شد کَت خدا باز یعنی خداوند اون خانه کَت خدا شدن یعنی زنگ گرفتن مثلا و این که کَت خدا را الان به معنی ده خدا می گیرن این یه ذره مفهومش وسیع شد. یعنی ده رو اتاق رو مفهومش رو وسیع کردن خدا رو به معنی سرور و فرمانده و حاکم ده اینجا ولی اصلی که ات خدا ببنیه، پسی که اتاقی برود. و این کلمه در همین میکده و بودکده و اینا هست که عرض کردم، یک کلمه هست. کتب. به معنی اون قرارکی که مازندرونی ها از کند، گیلانی هستند. درست میکردند در و دیگرون هم از یاد گرفتن اون کلمه محلی است. یعنی زبان محلی مازندرونی بلی در قدیم تا اونجای که من یادم میاد یه سوراخی دوشه خونه بود برای خاک زغال <تصفح> سمسون رو کرسی میذاشتم تا بسیار زغال میخریدم زغالا رو حلک میکردم خاک رو گوله اون گوله ها خیلی هم تو منقل گرم شد داخت میشد برای کرسی زغالای ریز ریزم میریختم روش که خاک زغال بهش میگفتن زغالای های هم در میوردن برای مصرف های مختلف و از جمله غذا باش نختندین و دوره بود، دوره های که میذاشتن و غذا روش دیگه دود و دمو اینا نداشت. توان یادم سالای ۱۴۰۱۱۰ وقتا تو خونه ما از اون دوره های بود که با اون چیز میکردم دیگه مادر من تو آشکر از خونه هیزومی نمیرد من آشکر از رو، تا سن 7-8 سالگی بیشتر بیاد ندارم 8 سالگی بعدش با زغال چیز میپختن و بعد هم توی نفت آمد و چراغای سفیتیله و دفیتیله نفتی که استفاده میشده بعد از گاهست و هر حال اون, اون سوراخی که زغال رو توش میذاشتن به شدن کته زغال این کته همین کت هست و نیست در هر نونبایی بیشتر ننوایی سنگکی ولی ننوایی تاختونی بزرگم داشتن یه اتاق داشتن که آرد اونجا خالی می و از اونجا می بیرون وقتی آرد می اومد مثلا یه خروارو پنجا دو خروار آرد خالی می این دست آدمی بود به نام پیشکار این پیشکار می اون تو این اول اولک میکرد بعد می تو کیسه ها یا پیت که دوازده که رو توش داشت یعنی چهار من که میشه یه ری این کیسه رو باشید که پختن یه پستهی پستایی یعنی یک چیز که وزن, وزن معینی که هست اونوقت معلوم بود که چند تا کیسته رو خمیر کردن رو پختن دیگه آخر شب معلوم میشد که مثلا دعت پستهی یعنی چلم آرد بسرت اون وقت دخل نوبایی رو تحبیل می گرفتن از اون اون, اون اتاقی که توش یه ترازو بود و نبود یه ترازو بود و اون پیشکارم لباس محسوسی می پوشید و. کفش محسوس رفتن اون طورم پاش می کرد می اون تو ورن اینکه بیرون تمام سر و روش آرد می شسته بیده. بعد علاق میکرد میکرد. می نه این رو پس می کرد میچید بیرون برای اینکه بدون خمیگیره بدونه، یا شاتر بدونه، همه بدونه که چقدر آرد این روز خوب اون هم بودن کته روی رینونوایی، اون محسن آرد رو بودن کته این کته، و اون کته زغال همین کده است به معنی جا یا اتاق زغال مستد، ده کده بود؟ بله، اون ده کده رو احیان به خودی گذاشتن من نمیدونم که قدیمم بوده یا نه من نمی‌گونم، اگه در مطمئی مثل مولانا، سعدی، حافظ بیدا شد من شک دارم شما که ده خدا داریم، ده کدر کنیم مرمان ده خدا, خدا, خدا, خدا شواهد زیاد میاره می‌تونی ببینیم که این شواهد رو از چه تاریخی آورده. این تا حدی بارد شدن این لغت رو در زبان پارسی نشون از کیه من اینجوری که فکر کنم به نظرم نرسدی که مثلا تو مولانا یا سعدی یا حافظ اینا کلمه دوگتاد از این بوشه. البته اصلا معلومه. بله. بله. بله. دل که یعنی آیا میاد اون روزی که استفامی است که تردید هم باش یعنی به صورت آرزوی محال در حقیقت میگه خواهجه که آیا ممکنه دوباره امیست بعض الان بنده در تابستون از انقلاب ساله سال هفته رو نمیم ساله نخیه پنجام نو پنجام نو هشت بهمن پنجام, نه، پنجام, هش، پنجام, پنجام بود تابستون 58 هشت من یه درس تابستونی داشتم، یه ترم تابستونی گذاشته بودن، معمولا هم قبول قبوله مثلا. ولی دانشگاه تربیت معلوم باشت بودن و خواهش تمناکی درس بدین، من اونجا حافظ باید درس میزدم، این وزل رو انتخاب کردم اونجا درست بودم. آشده ای دل که در میکده و خیلی چیز خطرناکی هم حدوثی بود. با ای دل که در میکده ها بکشاین، گره از کار فرو بسته ما پکشاین اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند دل قویدا، که از بحر خدا پکشاین اولا این دوتا دل ببینید توی دوتا مصراء برای دل زاهد خود بین دل قویدا، که برای خدا بعد خود بین خود بین یعنی کسی که هیچی رو غیر از خودش نمی‌بینه، یعنی خودخواه یعنی موسیو کبر کسی که دیگر آدم حساب نمی‌کنه، و در یه بیت دیگری حافظ پفصیر عجیبی کرده از این کلمه خودبین خودبین تحت لفظش یعنی فقط خودش رو دیگه، خودبین میگه یارب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید یعنی سترتباش عیبی اون فقط خودشو میگینه یا ربان زاهد خودبین که بجز عیب ندید دود آهیش در آهینه ی یه ذره دلشو چیز کن یه رفقتی دادی، آه بکشه همهش فکر نکنه که من... من با خدا پسر امو و مردم دنیا هم همه جروه ها هم بر حکم پشه و مگست اینا این جور حساب نکنیم اگر از بحر دل زاهد خود بین میکده ها رو بستن دل قوی دار. یعنی دل قوی داشتن یعنی خاطر جمع داشتن که از بحر خدا بگشاره حالا میکده رو برای خدا باز کنن اگر آدم روغ و مشرب حافظی داشته باشد، درسته. برای اینکه شراب رو می‌ذارن، برای کس که میخواد، هیچ وقت دیده نشده که پس گردن مردمی بزنن، بگم، چما باید تشریف بیارین اینجا عرق بخونی یا ویسکی بخونی. هیچ وقت نگرد. در دوره گذشته که آزاد بود، میکده‌ها آزاد بود، انواع احسان مشروعات الکلی خارجی و داخلی بود، بسیار کسان بودن که مطلقا لب نسته دیدن. هیچ کس من ندیدم که حکومت بفرست معموری سراغ اینا که شما عرق ممیخوریم و اینه که پرواندتون خوردن ولی وقتی که اینو ببندم برای اینکه ریا رو بیارم یعنی شرک خفی رو بیارم و در حویفت اظهار دین فروشی بکنن این بده اگر از بحر دل ظاهد خود دین دل قوی دار. که از بحر خدا بخشوه خدا بسیار بهتر این فسنده که میکده رو باز کنن هرکی میخواد بره هر هم نمیخواد نره ولی این ریاکاری و بازی و حقوازی در نگیرن برای اینکه اون ریا صد درجه فسادش بیشتره به صفای دل رندان که سبوهی زدگان اینجا من نفهمه اتفاقا تو مقاله حافظ بسعی سایم اینو نوشتم استاد ده تا نسخه داره دو و چهار و شیش و هفتاش بوده به صفای دل رندان سبوهی زدگان که نداره بعد بل نصفه لام، نصفه قذبینی هم, هم. جز اون نصفه است. و به نظر من گهتر میاد. البته صفت و مصوب در فارسی مطابقه نمی کنه. یعنی میگیم رندان صدوری زده. نمیگیم مرد نیک، مردان نیکان. میگیم مرد نیک، مردان نیک. ولی در بعضی موارد، میاد، مثلا. میگه که قطعا دن گوابان یعنی گوابایی که عرابو و گرگونه رو میشته باید بگه گردونکش، ولی میگه یا حافظ میگه که خلاص حافظ از آن گلت تابدار ما باید. که بستگان کمند تو رستگاران هن. باید بگه بستگان تو در موارد خاص و در شعر این مطابقه جایز و گاهی هم در وقتی که اسم, اسم معرفه باشید مثل ستاره های دوب اکبر رو بهش میگن هفت برادرون در حال که باید بگن هفت برادر عداد معدود هم سفت مصوفه و معمولا هفت برادر میگن وقتی هفت برادرون میگن معلومه که مقصود اون چیزه دوته ترکی هست در شی، نزدیک شیرات چلتنان و هفتتنان محصوب یه،, یه چلتن چیز نیست غیر ناشناخته نیست آه. یعنی چلتن معین یا هفتن معین اون وقت میگن هفتتنان چلتنان اینجا هم همتون به یه دل رندان سبوهی زدگان اینجا استاد خوشش آمده از ها. یه نسخش هم رندان و سبوهی زدگان اونجا هم دو و چهار و هفته کم 8 تا از ده نسخه دو تاش فقط بوده به صفای دل رندان که سبوهی زدگان بستر بسته به نفتاید و آب و و در اینجا ما وقت فائل این کار میشه سبوهی زدگان در حالی که وقتی بیدیم به صفای دل رندان سبوی زدگان بستر بسته به مفتاه دعا با دیگه فائله با کردن اون در این رندان نمیشه خدا یا هر کسی دیگری یا هر چیزی دیگه خیلی وسیع کرد میشه هم به کلیده دلدان دلدان بله به صفای دل رندان و سبیویزدگان بست در بسته این بست معنی‌های زیادی داره بس اینجا قید کسرته یعنی بسیار درهای بسته عدویر ببره کسرت بسیار درهای بسته رو با کلید دعا میشه باز کرد به صفای دل رندان و سبیویزدگان بست در بسته به نفتاه دعا بکش آگه نامه تعزیت دختر رذ بنویسید این در نسخه مرحوم غزنی اشتباه شده که یه مصرع عظیم بد رفت با مصرع بعدی اون یکی بد و بالعکس و این درست نیست نامه تعزیت دختر رذ بنویسید دختر رذ یعنی شراب رذ به معنی درخت انگوره به معنی باغ انگورم هست و مدت های مدیده که دختر رز رو به عنوان شراب می‌گیرن، حافظ خیلی داره یک شد رد شدید ازش دوستان دختر رز پهوز مستوعی کرد دختر رز میگه زیر, زیر تادر میگه شد برای محتسب و هرج محتسب میگه بیشتر موارد مخصول همین مبارزه بود رود برای محتسب و کار به دستوری کرد دستوری یعنی اجازه به هر حال این که این که در تنگه یا در خمه یا در شیشه است و از نظرها پنهانه اینو میگن دختره و باید پوشی درو باشید نامه تعذیت دختر رز بنویسید دختر رز رو کشت نینا و نامش رو بنویسید تعذیت از همون ازاست دید نامه, نامه مربوط سودباری برای دختر رزب بنویسید تا حریفان همه خون از مجه ها خوبشارند در،, در سودباری، در تعذیت همه گریه میکنه. و گفتم که هیچ وقت خون از چشم آدم نمیاد و شاعرها برای مبالفه وقتی کسی گریه شدید می‌کنه این چیزای چشمش سفیدیه چشمش تحرید میشه و رک‌ها و میشه، می‌شه سورف رنگ می‌شه چشم این رو گفتن خون از چشم آمدن و میگه که تعذیتنامه رختر رزی بنویسید تا حریفان یعنی طرفداران او همه خون از موجه‌ها خود شاهدن چنگ ببری مرگ نینا تا همه مقبچگان زلطه دوتا بچار یکی از مراسم عذا که آقای هست در در آلمان به نام آقای دیژن قیبی این کار میکنه بیچاره بدون هیچ ادعایی بدون هیچ سرسده خود چه هم که هم داره و این کار رو میزنه و بروشتینی میکنه و بعدم هم چاک میکنه گاهی هم این چش برای خیلی هم خوبیه یکی از اینا یه رساله است به نام آین صودگاری در ایران که اینا رو از کتاب های مختلف، چه از شاهنامه، چه از کتاب دیگه، چه از پیش از اسلام و چه از بعض از اسلام استخراج کرده و در آورده و میدونید که هر قبل سطح فرهنگ پایین‌تر باشه تظاهرات برای این سودواری شدید تر. تو سرشون بزنن خاک بپاشن کاغل رو سرشون بمالن نمی‌دایم گه‌هشون رو پاره کنن هر کسی میرسه دوباره از سرشون رو کنن بزنن زناب گیخ و بکنن نمی‌دایم اینا که هیچ در دوران های تمام اساسیه خونه اون متوفا رو به فسای جوون بوده همه رو می‌زدن مشکستان نابود خونش خونه‌شو خراب کرد. اسبش و یاردمش و و علما و کنیزاشو می‌گفتن تمام موهاشونو بزنن کوتاه کن و که میگم اینا هیچ کاری هم نمی‌کرده و بعضی مواردشون دروغ هم بوده برای اینکه اون صاحب و حالا بوده از اینکه اون بابا مرده ولی خب این بازیارو درمی آوردن برای اینکه فکرنگ فکر نکنم این یاوری و میدونن که اغلب این آینا بیشتر برای زنده هاست برای اون کس که مرده که اگر آدم هورحوری باشه او فکر کنه که اون دنیا و خدا و پیغمبرین نیست چه دیگه راست اگر اگرم هورحوری نباشه اعتقاد داشته باشه دیگه سر با حاکمی که عادل و رحیم و داناست و هر رو که هیچ که نمیدونه خدا از او میدونه و از او با عد و داد به اصلاح داولی میکنه و دربارش خود میکنه بنابراین این جزا و فضل ای خودیه و همه برای این که بگن به وقت چه ازاداری مفسدی کردن چه همه برای این و همچنین یه مسئل هست در زبان فارسی خیلی جالبی جالبیست الان چیز شده الان این مسئل دیگه باب نیست، میگه صاحب تعذیت مردم شمار است. آدم صاحب ازا، ایست از که باباش مرده، نه تا 20 سال دیگه یادش نمیده که کی تو مئلیس میشه اومد و کی تو مئلیس ختمش هم همان یادش میده، صاحب تعذیت مردم شمار است. خب این برای زنده هست، برای مرده که نکار نیست. نامه تعزیت دختره را از بنویسید تا حریفان همه خون از مجه ها بکشایند گیسوی چنگ ببور،, ببور رید به مرگ مینا اشاره به همون بریدن این تا همه مغبچگان زلط دوتا بکشایند یکی از علائم عزاداری پراکنده کردن موابده زلط دوتا لابود بلند می‌کردن و دو طرف می‌انداختن می‌گه باز کنن همه رو اصلاً مق یعنی روحانی دینی زردوشت مغبچه هم یعنی بچه‌ی بود ولی اینجا برای اینکه گفتم ما قوم مسلمان چون آدم‌های خیلی مهم می‌هزیم و ارز کنم که خیلی آدم معترمی هستیم از درست کردن شراب و دروختن شراب و اینا آره فقط می اون <تصفيق> کارهای دیگر رو گذاشتیم واسه یه امت موسی، امت ایسا، عربنی باشه، یهودی باشه، گبری باشه دیگه بستگی داره به تناسب این کجا بودن گذاشتیم که اونا درست کنن و مسلمان ها فقط میرن می خورن این است که موق بچه بابایی که زردشتی بوده و می کنه درست می کرده خب پسرش هم می اونجا که سرک کنه بید او رو به چیز گفت و چون یه مفهوم ارپانی هم داره شراب در حالات جذبه و حالات بیخودی است که به عارف دست می‌ده که او رو میگن نهی می. و فنابارین مقبچه اون آدم صاحب جمالی بودی که در خانقاه مثلا بوده و می که سودیا ها با نظر کردن به جمال او منتقله به جمال حق میشن و همثال اینا که توی غزلهای صد درصد عرفانی ها حافظم از مخبچهی میگذشت راهزن زن دین و دل در طی آن آشنا از همه بیگانه شد خوندیم قبلا این است که اون خدمتگذار میخانه از یه طرف و خدمتگوزار خانقاها همون از طرف دیگه اردوش میشه مخبچه مفهوم ارفانی هم داره من خیال ننکنم قانون اگر محصول که منظور طایت اسمال و قربون و شاختار زدن اینا باشه نه این بوده این پدیده در دو جو جامعه وجود می یکی جامعه بسیار تغییر که براشون امکان زن گرفتن گروهی وجود ندرد من در محل خودمون در دوره بچه کی و جوانی امثال این آدم هایی یکی مشمم دلی بود یه دکون نیمبادی داشت انقدر پهنای که بود. چه اسم خدا دپونو فروستمام الان گفت میگفت بهار نام آوآلو و نام تو شرف این قوم میخواست. اخر عمرش آدم بی سباد. همین این کارا رو سود خریدوروش کتاب و کتابا رو میشناخت کتاب درسی رو میشناخت کتاب غیر درسی رو میشناخت قیمتشونو میدونست تاریخش فروشش خیلی عجیب قسمت ولی به هر حال ممدلی تو اون دکون تا آنجا که ممندونم سی سال بود تو شبان روز تو این دکون که یه میخواست زن حداقل حد که باید یه اتاق برای خانم بگیره بعد یه دونه حسیر باید اونجا بندزه یه دست رخت خواب باید باشه پس خردام که سرسله آغازده بلنده شده هزار گرفتاری نمیتونستم بنابراین اونجا تمرگیده بود شایدم مثلا یه آدمی مثل خودش که در سنین کوچی کرد بوده بیرون تو خیابه میخواستی به خواهد از سعبه هم که مثلا بهش گفته بید تو این دکن اینجا آب و جارو کن و باش و با این نونی که من ندارم با هم میکاریم و بعدم که میخواهید خب تلاخره احتیاج را که می کرده چاره اینیستی به گفتش که گفتن که ویشی را راها بر برخواستی بگرفتن حدست یعنی جوان خواسم یعنی اون کار برد. در درویشی را با حدستی بر خبستی بگرفتم چندان که شرق ساری برد بیم سنگ ساری بود و قجرات کشید ولی بیم قطع بود گفت ای مسلمانم نظر زر دارم که زن کنم نه تا قطع که کنم چه کنم لا رهبانیت قل اسلام هر که دنگاه که در اسلام <تصفيق> یکی اینه یکی هم در اجتماعات بسیار مرفه که الان در دانمارک و در انگلستان و همینجا و اینا نمونهاشو که بعضیشون کیشیشم پیدا شده که اینا رو عقل میبینده کیشیشم خودشون کار است اینا اونا رو تا برسه به سنده مثلا 20 ساله همه انواع این تجربه‌های جنسی کرده میگه خب این یکی رو می‌مشکره، میاد این اینست که این دوتا هست در آثار شعرهای فارسی زبون ستایش پسر سر زیبا جنس مزکرد یاد شده‌ای دلیل بزرگش اینست که زن تو اجتمان هست رخصار زن نوید می‌گوید بنابراین ناچار وقتی میخواستن زیبای زیبایی ستایش کنند ستایش زیبایی پسرانه میکردن می‌شدن حتی حافظ در هم مدارد. مدارد. بله در نبودیم بله, بله؟ نا حالا نه اون اчора مطرحا... اون دیگه اون بسیارشون در اختیارشون نبود وقتی شامله حافظ آدمی که هم‌نشین شاه بودش شاه شا... شیخ یا بعد هم‌نشین شاهش ما اثر اینو داریم در, در دست ما آدم عادی اون روزگاری که اثرش نداریم بعد قرآن رو به چهار رو بعد از بر میخونده آدم جاسنگیری بوده این دیگه خیلی بعیده که کار رو به این روصفایی بکشونه هم بگه هم بکنه هم بسیاری از اینا گفتن و نمیکردن بسیاری هم پیش نگفتن و میکردن همه عمرشون و شواهد بسیار داره ولی این که یه شاعری از یه پسری گرم شیر این پسر خوننده ریزت دلا شیر مادر کن حلالش یا شاهدم دلبرم شاهد و طفل است و راضی روزی بکشد زارم در شهر نواشد کنه هشت بگیم خب بله باید اون اخل و اخل است این سندگیت نداره ممکن باشه ممکن نباشه بنده هم وکیل مدافع هیچ کدوم از آقای این نیستم ممکنه باشن ولی این که یه شعری در یه شعری از زیبایی پسرانه چیز کنه هیچ دلیل نمیشه که این کار است و باز یکی از قرینه های بسیار مهم این است که در اون جاهایی که زیبایی زنانه به چشم خورده مثل توی عشایر و مثل شهرهای مرزی شهر گنجه نظامی نظامی یک کلمه زیبایی پسرانه درش توسید نشه خاقانی گیال نمی‌کنم کم‌تر یا اگه بوده به صورت شوقی برای حال اه... اون اونجاهایی که زیبایی زنانه بوده به طور طبیعی بعدم این این کار یه انحرافه این انحراف اه... یعنی غیر طبیعی و غیر طبیعی یعنی در اقلیت زیاد بنابراین اکثر مردم سالم بودن درست بودن و می‌رفتن و زنم یک گروه هم بودن که به علت همون گرفتاری هایی که عرض کرده مثل اون محمدلی فرض چند تا بودن اینا. یکی و دوتا نبودن تو اون محله یه مشتلی بابا بود شیری بود لبنیتی باز هم داره. تمام آن بشت بکنش بخواب بود خب نمتونی زن باشه نداره زن هیچ خیالم نمی که خیلی حض می کرد تو اون بکن بخواب هزار جور گرفتاری و ناراحتی داره ولی خب بارال بگذریم از این بل، نه، اینه که اصلا اونجا هم مغ که نبوده یه مرد زرداشتی که مغ نیستش که اگه همه آدمای های قیه زرداشتی مصنم اگه آخوندن اونا همشون مستقی مستقی که اونا همهشون مغ باشن میدونم، این اصطلاحه، ولی ارپورشه که مغ نیست حتما اینو گذاشتن دیگه، اونم هم همه شاهد یعنی خوب بود آمد. آمد. البته، گاهی با قریمه های چیز پیداست مثلا، گرچه اونزا هم باز پیدا میست شعر سعدی میگه خرابت کند شاهد خانکن برو خانه آباد کردند بزن. زن این شاهد مکنه زن باشه نشونده باشه زنی کرد، نگرد مثلا میشه دیگه برای میخانه ای خانه ببستند خدا یا پسند که در خانه تزویر و برای اینکه گوشوددن در خانه تزویر و به مراتب زشتر و ناپسندتر از گوشوددن در میکانه یعنی یه دری رو بستن و یه در بسیار زشتر و بدتر باز کردن و میگه خدا یا تو راضی نشد. حافظ یکی از شگرداشم اینه یکی از روشاش اینه که اون خیلی بد و به خودش میگید برای اینکه بعد کسی نگی که ببند قومی کردی و خدا نونا به خودش میگید حافظ این یکی از دوستان ما میگفتش که یهودی ها قنونی اسرائیل مردم بسیار خوشماملهی هستن یعنی در داد و ستت خیلی مراهات قولشون میکنن زیاد ولی قبل از او پدر آدم رو درمیان یعنی چنان اسرار و ابرانبرت کیمه زدن و ملاحظه یش سننا رو اینا دارن که حیرت انگیزی و اسباب ناراحتی آدم بعد میگفتش که تو این چونه بازاری و اینا که میزنه بعد هر جا که میخواد بد رو بیرابیگه و اینا به خودش پرش میده که من پدر سختاری ببین من فلان فلان شده رو ببین من فلان فلان فلان ببین که مثلا اومدم با تو معامله کنم اینا به درگفتنی که دیوار گوش دیده حافظ این خرقه که داری تو ببینی روزی که چه زن نارز زیرش بجید این درست ریاست رو خرقه سوکیه رو رو زیرش ارمنی باشی اصلا و متأسفانه بسیار کسان بودن این جماعت باهایی مدت‌های مدید دینشونو پنهان میکرده یا امام جماعت بیده تو مسلمون‌ها می‌رفته، تو مسلمون‌ها، می‌رفته هی نوبت یا سه نوبت یا هر وقت بوده، به جماعت با مثل مرزان بهش ارتدا می‌کردن، و نمازی می‌خونده با قرارات و تا هم متهم‌ها، در باطنش پاهایی بوده اصلا مسلمون‌ها این که می‌گه زیر این قرقه‌ی تو فردا، فردا مسروح بیامته بوده. فردا عاقی میگن بسی روزی فردا بهتره دیگه فردا بهتره ارز کنم که دو نسخه روزیه دو روزی از این در نسخه هشت فرداست و فردا بهتره و حافظ این طرقه که داری تو ببینی فردا که چه زننار زیرش به دقا خود شاید زنار یه نو کمربند یا تصمیهی بوده که حالا چجور میرستن نمیدونم علامت نصرانی بودن علامت مسیحی بودن چیرو، رو؟ خزل و چشم بله بل... چشم باشد ای دل که در میکده ها خود گره از کار فرو بسته ما خود اگر از بحر دل زاهد خود بستند دل قویده که از بحر خدا بگشایند به صفای دل رندان و زدگان بست در بسته به مفتاح دعا بگشایند نامه تعذیت دختر رزد بنویسید تا حریفان همه خون از مجه ها سوی چنگ ببری به مرگ می تا همه مقبچگان زلطه دوتا خوب شایم در میخانه ببستن خدایا آیا پسند که در خانه تزویر و ریا خوب شایم. عرض کنم که یادم رفت بگم که اون نامه تعذیت نوشتن با اون از موجه شدن کمال تناس رو داره با گیز توی چند بریدن با دولت گوشوندن مووچگان کمال امال بود داره و در نسخه مرمون غزبینی این دوتا جاهاش عوض شده یعنی کاتر که نسخه می نوشته نمیش که نوشته حواسش نبوده از اون بیت بعدی مصرهای دوبار رو نوشته باید شد بگو طول می صلح. دیتی که نشون بالا می نره. رو این, این که بکنیم اینجوری علامت وزنی که این مصامل اون مال درست بشه. باید دو بله. بله. دو رو وا کنه. در علامت طول دو رو بغشای. یعنی از حالت دو تایی خارجش کن. بعد خب، یه زر چیز کنید یه، حالا، نظرم روزی میکردن از انگیزه و می کنار بوی تحفانش می می‌دونستم که غزل بعدی شروع کنیم که در چمن آمد گل از عدم به وجود بخونیم شاهدی می‌گه در چمن آمد گل از عدم به وجود و نفسل از قدمی ناهال سر به سرودی سر ناله صفچاین دور گلد شراب و شاهد چند هم تو دور, محبید. محبید. دور و برد از که آسمان روشن زمین به اخبر میمین و آره مصرور دست شاهد نازوی right. از شراب نوش و رها کن حدیث آره جهان تو خلده بری شد به دور سوسن و گل جهان تو بری شد به دور سوسن گل ولی چه که در وی نممکنه است؟ تو بول سوا شد بر هوا سلیمان باش و هر که مورد در به نظره دا بود. به با چاره کناه این دین زردوشتی اونین که لازه برد بود آتشه این دوم است نیست به و که مجلس حافظ به یمن تربیتش قلمی طلبات باشدش نیست تربیتش هم که مطلبات باشدش موجود عذر کنم که من اول این غزله خودم بخونم زبد یادم نری خونون که در چمن آمد گل از آدم به وجود بنفشه در قدم اونها سر به سجود بنوش جام سبوگی به ناله دف و طنگ به بوستقب صاحی به نغمه می و او به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چند که همچون دور بغا ای بود معدود شد از بروج ریاهین تا آسمان روشن زمین به اختر میمون و طابع مسئول ز دست شاهد نازد ازار ایس آدم شراب نوش و رها کن حدیث و سمین جهان که خلده برین شد به دو خسوسن و گل ولی چه سود که در وی نممکن است خلود که گل سوار شود بر هوا سلیمانوار سهرک مرگ سراغیت دراغیت به نظمه دابود به با تازه کن آین دین زرگشتی کنون که لال آتش <تصفح> که خواه جام به یاد آسط عهد وزیر مد سلیمان اماد دین مهمون وقت که مجلس حافظ به یوم تربیتش هران چه جمله جمعه باشدش مفرد. این غزل از دوران جوانی حافظ شاید و سال قبل از مرگش قبل از درگذشتش. و حالا من این چهارتا کلمه ای که اینجا درباره باره محمود معنوم اصداد خانلری نوشتن میخونم درشن بشه خاجه اماد الدین محمود کرمانی وزیر شاه شیخ ابو اسحا شیخ ابو اسحا پاتر دوران جوانی حافظه بعدش محمدی، محمد بن مبارزتین محمد مزفری است بعدش شاخشجاه بعد چند دیگران و خود شاخشجا تنها 26 سال سلطنت کرد بنابراین خیلی قدیم شمس فخری کتاب مئیار جمالی را به نام او تعلیف کرده است یعنی به نام امادتین محمود گرمانی در سال تعلیف 744 در 744 کتاب مئیار جمالی به نام این امادتین محمود تعلیف دوره وزارتش از 744 تا 754 756 بعد در سال 758 وزیر اخی جوخ در آذربایجان در 759 تا انحزام ملک اشتب در اصفهان حکومت داشت ببینید که یه وزیر که شغلش بذارد میتونست وزیر این شاه بشه باید بید بره وزیر اونی شاه بشه مساحل اشکالی نداشته غذال 198 را یعنی همین غذال حافظ در زمانی که اماد محمود وزیر شاه شیخ ابو اسحاق بوده در شیراز سروده است دلیلش هم اینه که میگه وزیر ملک سلیمان اماد محمود ملک سلیمان یعنی شیراز وزیر ملک سلیمان یعنی وزیر شیراز پس در دوره شیخ ابوه یعنی اگر سال آخر وزارت او را در نظر بگیریم سال آخر وزارت شیخ ابوه یعنی سال 756 حافظ این قزن را 36 سال قبل از پوک سروت بنابراین از آثار دوره جوان حالا چیز بکنم البته چیزام نداره اینجا مضمون آرفانه خیلی چیزیم نداره مطالبش مطالب عادیست خنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود بارها من گفتم گل به معنی گل سرد و دوراشم خیلی کمه هم اینجا بهش اشاره میشه که دورانش خیلی کوتاه. هست کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود بنافشه در قدم اونها سر به سجود سر بنافشه و بنافشه های مازندرانی رو اگر دیده باشین مثل آدمش که سرش پایینه یه میله نازک داره نسبتاً بلند ده سانتیمتری که به ذولف تشمیل میکنن اون چیز رو سر اینم یه گله که اینجوریه اینی که میگه که گل که آمد اکنون که گل از عدم به بوزود آمد و بنافشه در قدم او سجده کرد به نوش جام سبوهی به ناغله دفوچنگ سبوه شراب صبح و در مقابلش لغتی است که نا ایمده توی شعر من ندیدم ولی توی وقتای نصف آمده قبوق یعنی مقابل شم آ، وقت محصول دیگه هم هم می تود. وقت مصفیده. البته اینکه آدم صبح و صحب و شب بخوره، این, این است که شب زیادی افراد کرده، صبح مراحتی داره که میگه که چاره یک کشدم زده کشته یک کشدم بود می زده را هم به می دارو و مرهم بود هر که سبوهی کند با دل فرم بود با نفس مشکوی با دروخ حور این حال من او چه خیلیم به جام سبوهی به ناله دخ و چنگ دخ دایرست می‌گوز ببوز قبقب به نقمه نی و اود اودم که دیدید می‌گونید مرحوم استاد محسنی اود می‌زد پاسه بزرگی داره و دسته کتاهی و سیم‌های خیلی سه سیداشم بند در مورد دفت هم باید بگم که دفت رو دایره بزرگی توش حلقه حلقه هستش و در این چمبر دفت دایره چوبی که احاطه می‌کرده اون پوست رو توش و بیرونش نقش شکارگاه و این چیزها میکشتن اون وقتا این خیلی ثه زیبایی درست کردن و گاهی در شعر تصیل شده. آقاه میگه در چندبر دف آهو و گوب و یووز و سگ چهکارگاه. یعنی به دوبر گل من شیندی شراب و شاهد و چنگ که همچه دور بقا هفته ای با باید محدود دو روزه دوران گل کوتاهه مثل دوران بقا دوران بقا خیلی کوتاه نیست ولی اون چه می‌گذره آدم به نظرش مثل یه شب یه می‌آتیش می‌آتیش ولی گل حد اکثر بودنش سه هفته است. از اولی که اولین قنچه گل صورت طبیعی تا وقتی که آخرینش به باد میره هیچ وقت به یه این است که گل به کوتاهی عمر چیز داره و صاحب کلیله میگه که اگر کسی در عمر کوتاهش پاید مهم کرده باشه عمرش مثل عمر گله که با اینکه که کوتاه زندگانیست مورد قدردانی مردم و کسی که هیچ نکرده باشه زندگیش مثل زندگی برگ پاژه که اگرچه و وقت خزون نداره و ایش وقت نمیزه ایش وقت هم کسی سنگی در ترازوش روش نمیزه ایش روش نداره به دوره گل منشین بی شراب و شاهد و چند که همچه دوره بقا هفتهی باید معدود شد از گروژ ریاهین چو آسمان روشن زمین به اختر میمون و طالع مست برج تحسیم بندی آسمون میدونید که ارز کردم خدمتون که اون قسمت از آسمون رو که خورشید درش دور میزنه که در حقیقت خورشید که دور نمیزنه زمین دور میزنه ولی قدما فیال میکردن این خورشیده که دور میزنه خواهی ندید اون قسمت رو چهش میگن طول بروج یا زودیگ او رو به ده قسمت تقسیم کردن اون, اون منطقتل برو شد و هر قسمت که گفتن یک برج برج حمل، برژ سور، برژ جوزا همین که در غروسکوب اغلب نیبینید و این چیزایی هم که اسم بردن بره و نمیدونم گاو نرو. جوزا نمیگونم دو پیکر و امثال اینا آمدن ستاره هایی که در اون قسمت در اون قسمت برج سی چه هست دریجه هست دیگه کنیم هر کدوم سی درجه و معتقدن که خرشیر در این سی روز هر سی روزی یه برز می کنه سی این سی درجه ای رو این, این که سی درجه ای رو ستاره هایی که توش بوده تشبیه کردن به اون چیز عمل یعنی بره ستاره های برج فروردین رو تشبیح کردن به فره بعدم تو کتاب کتابه نجوم که بخونید میگه که این بره سرش کجاست کجا و دومش کجاست و چجوریه چه جوری نیست و جایی قرار گرفتن ستاره های مشخص شدیدن و رو سور که رفاصحاب جن طغو همون صورت یعنی گاوبناب و باز صورت گاوی جوزا دو پیکر عرض کردم مثالش یعنی صورت به اصطلاح روکه میچشن یه زن و مرد لختن که در آغوش هم مثلا دو پیکرش عمل صورت جوز سرطان پرچنگ، اسد، شیر، سنبوله، کوشه یک میزان، ترازوه، اغرب، اغربه، تجدوم، گزدوم، در حقه. مرحوم استاد، استاد ما می که در ده ما، در بشرویه، می کنند گزدوم و این درسته به دلیل اینکه بعضی اقراب ها هست، دونش کج نیست، یعنی کج تو. بعضی هاشون بالا نگرده دفعه هم اینکه حالا این اصلا امتیاز مهم هم نیست هیونی که از دم میگذه چرا؟ زنبور، زنبور، زنبور نیست برحال گزدوم، ولی اون دم نداره، از منطقه بدنش میگذه گزدم حال اغرب قوص یعنی کمان کمان تیرندازی میزان اغرب قوص جد یعنی بزغاله دلو یعنی سطح عبشی و حوت یعنی ماهی چیزاشون <تصفيق> هم هم این هست علامت های اختصایشون که هم نبچه هم هر قسمتی از این سی درجه منطقت و روزه بشه نگه هم یه برچ و هر کدوم از این برج‌ها به وسیله ستاره‌های خودش روشنه و مشخص شده. درسته میگه که گل‌ها رو تشبیه می‌کنه به ستاره‌های تو برج‌ها. شود از برج ریاهین ریاهین جمع ریحان، ریحان یکی معنی ریحون رو جواب، یکی هم معنی اون کلمه‌ای است که ما در انگلیسیش میگیم فلاور و در فارسی نداریم مسابقه شد الان گ الان گل گرفتیم برای اون کار ولی گل ارس کرده معنیش روز حالا گرفتیم که از نداری گرفتیم میگه که از برج های گل ها زمین رو زمین مثل آسمان روشن شد <تصفيق> یعنی گل ها مثل ستاره های تو برج های مختلف زمین روشن کردند شود از بروج ریاهین چو آسمان روشن زمین به اختر میمون اینکه صحبت آسمان میکنه و ستاره های آسمان و بعد صحبت ستاره سعد و طالع سعد این رو میکنه. شد از بروج ریاهین چو آسمان روشن زمین به طالع میمون و اختر میمون و طالع مصمون. حالا که اینجور شد دست شاهد نازک ازار ازار یعنی روخ دست شاهد نازد ازار ایسا آدم این مرد زنده کردن محشوع رو هم محافظ اشاره کرده گرچه پیرند و شبیه تنگ در آخوش هم تا دا سهرگه از جوان برکیزده اینه که میگه ایس آدم بعد ایسا مردار زنده می‌کرده میگه از دست او شراب بناشت و حدیث آد و رو ویلپون، آد و سمود اسم دوتا قوم بوده، قوم آد و قوم سمود به شرحشون در قرآن آمده است و می‌گفتن که اینا مردان خیلی قویه‌گلی بودن حشیش شکمت مثلا طول قدشون بوده از این حرفون و بعد گردن کش بودن و چیز بودن و جببار بودن و مردم عذیت میکردن و خداوند عذاب دارسته نسوشون از وین بود قوم سمود و قومه آد رو از بین بود بعد حاجب یکی از پاکشان قومه آد شداد بوده که گفتن که گفت من میخوام یه بهشت تو زمین بسازن مثل بهشت و رو به تفصیل در تفسیرهای قرآن در قرآن اشاره کوچک هست ولی اونجا تفصیل بسیارش روی چیزا هست که بهشتی درست کرد و چقدر سالها مردم واداش با به این کار که برنم درست کنم و چه در بصف بهش شنیده بود اینا رو چیز کرد و روزی که نحاس قدم بذاره به اون چیز روزی که نحاس قدم بگذره به اون باغ یک قدم مونده به رسیدن به اون باغ خداوند جونش رو گرفت و اون باغ هم از نظر مردم دیگه پنهان موند تا فقط یک نفر در دوره اسلام میجن رفت تا این باغ رو دید برای اینکه وسوسه شو دیگران بگیره در حال، اسم شما خواهی، اسم شما من میگم، عبدالله ابن عبیق الابد. نوالا، عیقه ذادستم شاهد نازک‌عزار لیث آدم شراب نوشو رهاف قصهشم تو 2001 هم اومدی 2001 میگه در دوره معاویه کسی اومه از رفت گفتن یه دم اینجوری اینجوری اینجوری اینجوری این و بعد ها رفتنش افتن ندیدن رفتن تحقیق کردن که این دروغ میگه راست میگه بعد گفتم که بله ما در کتاب ها اون دیدیم که شخصی با این وضع با این هیئت اون شکلی میره و اینجا رو میدینه را دیدی کسی نمیبینه اسم اسمش همه همونیست که از تاییم <تصفيق> عبدالله ابن عبیر خلافه <تصفيق> هم یکی از میرسیم حالا به نمرود بله این آز سمودش جهان چو خلده برین شد به دوق صوبصن و گل برین یعنی بالایی دیگه بر یعنی بالا برین یعنی بالایی در مقابل زیرین خلد برین یعنی بهشتی که مردم فکر دارن که جای بهشت در آسمونه و احتمالاً جهنم مثلا زیر زمینه این است که به هر حال بهشت تو آسمون تصده همونجور که خدا با اینکه جایی نداره ولی دست به آقای که با بالا رو نگاه میکرنن برای چیز که خطاب کردن به خدا جهان چه خلد برین شد بهشت شد به دو صوب، سن و گل پیداست که این غزل در باهار گفته شده ملحظه می‌فهمید جهان چه خلده برین شد به دو صوب، سن و گل ولی چه سود؟ که در روی نممکن است دلوید حسوس که گرش باقی موندن ممکن نیست چو گل تمام این قهرانه مذهبی رو اسم برده چو پود گل سوار شود بر هوا سلیمان باد یعنی باد نیبرش برگای گلو سلیمان میگفتن یه بساطی داشته خالیچه یا بزرگتر و خالیچه برای اینکه همه ای هم میرده و هر وقت میخواسته باد در فرمانش بوده دستور خود میداده که خالیچه برداره خالیچه نبوده، قالی بودش از قالی هم گنیتر بوده و هر حال برداره و هر جمع ببره و اون حسابی که من دیگه کردم یعنی گفتند که از کجا تا کجا رو یک روز طی کرده معادل اون تیاره های قبل از جت دو موتوری یا ها سرعتش معادل اون سرعت اون طیارهای ملخدار اینج فلان ساعت مثلا از مثلا از پراسون حرکت میکرد و فلان ساعت از صبح مثلا حرکت کنه از چاپ میره مثلا به شیاسیاس بره توگل سوار شود بر هوا سلیمانو در ضمن بگم که سلیمان از پادشاهان بنی اسرائیل در مدارک یهودی سلیمان پادشاه فقط و در اهده در تورات در کتاب پادشاهان اسمش آمد ولی در اسلام خلعت پیغمبری رو هم به او ارزانی داشت و به عقاید و مسلمانان او پیغمبر هم بود پادشاه شاید یکی از دلایلش این بوده که پادشاهان قدیم ایران هم شهریار بودن هم مبعث این جنبه هم سلطنت و روحانیت با هم در یک نفر جمع بود. تقول سوار شاد بر هوا سلیمان بار سرک مرغ در آیت به نقمه داوود داوود پدر سلیمانه سلیمان کسر داوده داود گفتن صغط بسیار خوش داشت به طور کسی صدای بهتر از او نداشته و صغط داودی و نرمه داودی معروف، معجزش هم این بود که آهن مثل موم در دستش چیز می شده و از صنعت زره سازی امرار ماش. اینکه اونم کار چا پادشا بوده پچال کوچ ترری از پسرش ولی از اون بودجه سلطنتی زندگی نمیکرده از ذره می ساخته و میفرخته و از اون راه زندگی میکرده توی داستانها ها ذره تنگ حلقه دارودی چون ذره هر که هرچی حلقاش زره که. حلقه های آهن باخته تو همه هرچی ح ها ریز تر باشه این ذره محکمتر و مرفوطتری برحال داوود هم صدای پشت داشته هم زره می که اصطلاح موجزش این بوده که آهن در دستش با دست زره می ساخته تو گل سوار شود بر هوا سلیمان بار سهر که مرغ در آیت به نقمه داود به باق تازه کن آین دین زردشتی کنون که لاله برق روید آتش نمرود به طرف بیت و هم چسب. نمرود یعنی آدمی بسیار میرومند اولا باز از این پادشاهان بوده پادشاه هایی بوده است که در دوره ی حضرت ابراهیم زندگی میکرده و ابراهیم به اعتقاد شیعه یه اموی رشته به اعتقاد اهل سنت پدری به نام آزر، آزر با ز نوازار ابراهیم آزر با زه، آزر بت تراش فارش تراشی بوده در روزگار معمودم زندگی می‌کرده میگن ابراهیم ذهن جستجوگر داشت و توجه کرد که از دست بوت کاری برنا تو رو بفرستن یه روزی که همه مردم از شهر بیرون رفته بودن اومد زد همه بطار شکست و توبر بزرگ کردنن بوت بزرگ و وقتی اومدن گفتن که تو کردی ها گفت من ب بزرگ کردیم گفت آخه اون حرکت نمیکنه هم این چیز نداره گفت شما چرا میفرست به حال یه مناظر و مهاجه و بحثی میکنه و داستانش مفل در قرآن کریم آمده و در تفصیل ها تفصیلی بیشتر و در یه قصه‌ی، قصه‌ی خیلی خیلی معروفی در عربی که به نام سیرت انتر انتر پهلوان مثل رستم ما در فارسی انتر باعین در عربی انترات ابن شداد الابسی من نمیدونم که قصه‌ی انتر همه صحت یا نه ولی شخصی هم انتر تبم شداد الابزی وجود داشته و شاعر بوده و به همین دلیلم نیمی از این سیدت انتر شعره و بعد میگن که پهلوانم بوده است و عرض کنم جنگاورم بوده است و داستان مفصلی داره عشقی داشته رو دختراموش عبله عبله و با عین باز و امو نمیذاشته که این دوتا هم برسن و داستان مفصلی انتر، انترات ابن شداد یکی از کسانیست که قصیده شد به دیوار کهبه آویزون کردن به عنوان معلقات هفت تا قصیده معروف بود که به دیوار کهبه آویزون کردن نام معلقات سب یکیش قصیده انترات ابن شداد این به هر حال نمیدونم از کجا رو اینجا رسیدیم میگه که وقتی که بعد صحبت نمرود بود مفاستر ترین سرگزشت حضرت ابراهیم که یک شده در قسمت اول این کتاب سیدت انتره انتر یا تا جلد هر کدومش هفت و من دارم نصفش رو بله، کنم که بالذ نسخه کاملش دارم برای اینکه خلاصش باشه خیلی زیاده. انظوری که شاهنامه رو خلاصه رو جزء این قضیه هم هست شاهنامه اینا ولی این کتاب کامله. گرفته بودم که ببینم چقدر ارتباط داره با داستانای خودمون. علتش اینه. آرزو کنم که به هر حال اونجا ش... سرگذاشته حضرت ابراهیم به تفصیل هست. و اونجا میگه که بالاخره چون چیز نشد چون موافقت حاصل نشد بینشون گفت که من آتیشی بی افروزی در اون بندزیش بام بعدم نمیتونستم برن جلو آتیش چون خیلی آتیش بزرگی روحشن کرده بودن گفتن که ابلیس آمد و منجنیق رو اونجا اختراح کرده در اختیار نزده گفت به وسیله این منجنیق امیدوارم که منجنیق رو در فیلم دیده باشید که با چرخ و دنده و اینا رو می و بعد چیزی، یه جایی داره که اون تو مثلا سنگهای بزرگ یا طریق آدم این یه دفعه این پره، اینا میکنه، اینا جلو که قله ها اونا رو دیوارشو حراب میکردن، اینا تو فیلم های تاریخی اینا هستش عرض کنم که میگه ابراهیم رو بردن و جا و بعد به حکم خداوند آتش بر او گلستان این قصه قصه قصه, قصه آتش گلستان شدن بر ابراهیم در تورات نیست. به کشیش انگلیسی که البته قصدش این بوده است که به هر قیمتی هست اسلام رو به, به نفع مسیحیت یک کتابی نوشته به نام جنابی اسلام اونجا میگه که علت این آتیش و فلانون هم گلستان شدن اینا این بوده که یه کلمه تورات تا عوضی خوندن اونم آورده حالا برای به اون مطالب من ندارم مسئله مسئله یه نمروده نمرود پادشاهی که دوره حضرت ابراهیم بوده یعنی معاصر ابراهیم بوده و بعد هم یکه چون این خیلی اظهار نیرومندی و اینا میکرده خدا به ابراهیم به میفرسته که من به وسیله ترین و ترین مخلوق خودم اینو آجزش میکنم از بین می‌برم اش و اون یک پشه لنگی رو میگن رفتی از بینی این رفتی دماغ چیز و به قد اینو ناراحت کرد که می‌گو پینا با تقماق و اینا بزنن سرش تا این یه ذره راحت دشه و بالاخره مرد با زجر تمام در نتیجه دخالت اون پشه. اون کشیش اسلام رو به نفع مسیحیت یعنی میخواسته بگی که اون, اون کشیش بوده دیگه گفتم یه کشیشی گوش نمی کن. گفتم یه کشیشی آمده و گفته که این قصه سوزوندن ابراهیم در تورات نیست و علتش اینه که در دوره پیغمبر اینو یک کلمه رو عوضی خوندن این داستان از اونجور در آمده اون کشیش میگه کشیش دانبال شمردن عیبای اسلامه نه برای اینکه واقعا عیبای اسلام به خود بگه یا بیغرازانه این کار بکنه نه اصل مطلبش اینه که این رو به نفع یعنی تعبیر بکنه به نفع مسئولیت در ضد اسلام به باغ تازه کن آین دین زردوشتی کنون که لاله بر روخت آتش نمرود حافظ لاله رو به تنور رو اینا تشبیل تنور لاله چنان بر روخ باده بهار که خونچه غرق عرق گشت و گل به جوشان بنابراین لاله لال مثلا یعنی گل سرخ رنگ که لال یعنی سرخ و کلمه لعل ون سنگ سرخ رنگ باز از همینه لال هنوز در هندوستان هست و در روایت محلش میگن لال پرتی لال پرتی پرتی قرته است یعنی پیرهان و لال پرتی یعنی پیران سرخا این است که لاله یعنی گلی که سرخ رنگی میگه حالا که لاله آتش نمرود رو افروخته در باغ آعین دین زرداشت رو زنده کن یعنی شراب بخور اش عشق بخواه جام سبوهی به یاد آصف عهد آصف هم لقب وزیر حضرت سلیمان که گفتن که وقتی سلیمان بلغیس رو میخواست گفت که کی میتونه برای من بیاره یکی گفت من 24 ساعت میارم و یه دیوی گفت که من مثلا یه ساعته میارم اونی گفت من در چند ثانی میارم عاصف گفتش که من فعند روزه اینکه شما چشتون کنون بزنید حاضره اینجا که حاضر کرد اینکه از کارهای مهم آصف کنید برای سلیحان و هر حال بزرها رو در دور اسلامی بزرهای خیلی آلی قدر رو به آصف بزاختن همتای آصفی یا آصف جاهی یعنی قدر منزلت شما به انزوی آصف یا آصف عهد یعنی اون آصف که مرده حالا آصف اینه بخواه جام سبوهی به یاد آصف عهد بعد برای اینکه یه خودم بیشتر ثابتش بکنه میگه وزیر ملک سلیمان برای اینکه فارس معروف بوده به ملک سلیمان از قدیم حافظ میگه دلم از وحشت زندان سکندر بگیره زندان سکندر مخصول یزده برای که در تاریخان روشتن که اسکندر وقتی آمد در اونجوری زندانی ساخت حافظم رفته بود سفری به یزد و گویا بهش بعد گذشته بوده خیلی میگه دلم از وحشت زندان سکندر بگیره وقت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم یعنی تا چیست فارس و تخت جمشید رو گفتم قصه های منصوب به جمشید و سلیمان با هم قاطی شده از دوران پیش از اسلام تخت جمشید رو هم نشونی از امارت ها و ساختمان های عهد سلیمان نیستن به همین دلیل فارس گفتن ملک سلیمان و این آقام وزیر ملک سلیمان بوده و این جانشین آسف به خواه جام صدوهی به یاد آسف وزیر ملک سلیمان امادالدین محمود بوعد که مجلس حافظ به یوم تربیتش هر آنچه مطالبت جمله باشدش موجود بوعد با یعنی امیدوارم که باشد که مجلس حافظ از مبارکی تربیت او تربیت به معنی پرورشی تعلیم به معنی آموزش تربیت هم به معنی پرورشی این که تربیت رو فکر کنید که مثلا یک کتایی که زنان بچه رو این تربیته اونم یه قسمتی از تربیت هست البته ولی نیست تربیت یعنی پرورش داده با وقت که مجلس حافظ به یمن تربیتش هر آنچه میتلبت جمعه باشدش موتی. یک نشونی دیگه هم داره این غزل که مال دوره جبه معمولاً معمولا حافظ بعد هر وقت میخواسته مده بکنه کسی رو ده. اول تخلصش می آورده بعد یه بیت یا دو بیت به عنوان معت زیر تخلص می که اگر کسی خوشش نیاد دلش نخواد معت کسی رو به خونه اون دوست تو بیت رو بذاره کنار مثالش رو میارم یه غزل یه یه ای که بر ماه از خط مشکی نقاونداختی لذب کردی، سایهی بر آخداق انداختی عرض کنم که میگه میگه در متحه شاه یحیاز بعد بیت 11 همش، قزل چارسد میز این نصفه مرحان لگه می میگه چه اوچه چه و چه، بعد میگه که با اونش از جام آلمدین که بر اورنگ جم شاهد مخصوص را از رخ غاب انداختی بیت 11 از فریب نرگس مخمور و چشم میپرست از فریب نرگس مخمور و لعل میپرست حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی بعد و برای سید دل در گردنم زنجیر زل چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی داور داراش و آنکه ای آن تاج آفتاب از سر تعظیم برخاک جناب انداختی نصرت دین شاه یه یا آن که خسم ملچا از دم شمچیه چون آتش در آب انداختی میگه چند جای دیگه هم همینگیر هست در غذایی بگه که در محت اشخاص هست اول تخلیصشون میگه بعد میاد یک بیت یا دو بیت و اینجا اسساان 3 بیت در مدحه بابا ساختیم ولی در اینجا در این غزل اینجور نیست یعنی تخلص بالا نیست بیت مد به خواه جام صبویی به یاد عاصف اهل وزیر ملک سلیمان اماد محمود بعد حافظه میاره به طوری که این بیتو نمیشه حسبش کرد چون اگه بخوام حسب کنیم بعد بیت بعد بی‌معنی میشه گویا که ای جسオフィス به يوم تربیتش اولا مونم مونم روز مته بعدم تربیت به تربیتی که کی نمشه تا که این نشونه این است که این کار مال اول بفهم این او این برای اینکه شما از بیدتر راه پیدا کنید به خزاله این پا رو بعد کرده اولایی که نسخه نصحای... اولایی هم حافظ خودش جمع نکرد خزاله که این راحت که از حافظ هیچ اثری در تنظیم این نسخه وجود دنگ شد برای اینکه بعد اولی نسخه هایی که نوشتن همزیز نوشتن خزاله که بعد اول سعی کردن، که مثلا یه, یه نسخه ای 811-813 من اون خانلالی نوشته، مقدمه جلد دارد. که یه نسخه ۳۳ مقدار غزلگی رو پیداست که جمع کرده، اینا را اله نوشته، تموم شده مثلا تا ۳۰۰۰. بعد ما دوباره یه مقدار غزلگی رو بوده، اینا دوباره از سر از ۵۰ اله نوشته. بعد هم حالا این علف بایی هم خودش باز گرفتاری دیگه داره که حالا من نمیتونم یعنی چهار چیز باشه آخه دال مثلا که همین داریم چقدر غزل با داله خیلی زیاده الان بل ارز کنم که از از نوید و تا الان این سد و نویده هشته, یعنی سد تا باز هم هست. است اینا رو بعد تازه خودش خیلی چه جور تنظیم کنه؟ یکیش این است که حرف بعدی رو میگیرن یعنی ارژه الفابتیک باشه مثل دیگشه یعنی اول الف و دال، بعد به و دال، بعد پ و دال، تا آخر تا یه و دال آخر یکی دیگرش هم اینه که گفتن این دالار میذاریم پشتر هم منطقه به حرف اول غزل یعنی اول اون غزل این هم مال ما این, غزل. این کتاب هایی که شماستیش کدونش اونجوری یه خود تنبالش کرد. ولی حافظ انجبی اینجوری به ترتیب اول غزل که با آ شروع میشه بذارن بعد همجور به همجور تا آخر اون و شما به اول غزلی که بدونین میتونین پیدا کنید. این یکی به بیت اول محتاج نیست، فقط باید بلد باشین که این نظمش چجوریه از اون را پیدا کنی، اینا همه برای آسم شدن کارشون نیست نه، نه، چرا؟ همه همطوره اونایی که چاپ شده، مخصن همجموع ازم میکنم حالا اگر یه وقتی کسی سواد این کار رو اینقدر نداشته که بکنه اون دیگه تخصیل ناشیگری خودشه. بنده دیوان قعانی و دیوان سروش چاپ کردم همین روی منترسون کرده این ب... گفتم برای که شما این اینکه شما زودتر پیدا کنید به این غزل رو جلو اون که رو بیزرن اقعب چه تحصیلی اما راجب زمانم که میگید ممکنه یه جدول زمانی اون آخر بذارم تازه بعضی غزلهایی هست که ما میتونیم به طور قطع حدس بزنیم که این مولف روزگار ژاپنیشه این مولف روزگار فیلیشه به از غزل‌ها رو هم نمیتونیم بزنیم بنابراین کجا زندگی می‌نورد بله این است که در هر حال بهتر اینه که ترین راه رو برای مراجعه چیز تا نذرت مثلا ببینید این غزل 198 باب و دال فام خنون که در چمن آمد گل از ادم به وجود و در قدم اونها تر به سجود اود، معدود، مسعود، سمود فقط واقع داری قزل بعدی سالها دفتر ما در گروه صحبا بود رونق میکده از درس و دعای ما بود به و واقع دالی. تازه قبل از به و واقع صحباب صحبا بود باز یاد بادان که نظ... نهانت نظری با ما بود بعد شده تازه میخانه اومه می نامونشان خواهد بود بوده با دال و همینجور بعدش قدش دیگه اینا رو خود شما باید خود شما باید به خود دقت کنید وقت حافظ بکنید بعد این چیز دارم دقیقت کنید خودتون بشید راه برید به دوما و بله این چیز بعدیست دیگه غزل روز بعدیست دیگه سالها دفتر ما در گروه صحبا بید. رونق میکده از درس و دعای ما بود نیکی پیل مغان بین که چما بد مستان هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بید. دفتر دانش ما جمله بشوید به می که فلک دیدم و در کین دل دانا بود، در کین من دانا بود هم همینطور از حافظه ای دا برای توجهتون بگم که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود فقط در ننسه خلفاالی بود یک نسخه، نسه لام فقط هست. بعد دو تا نسخه دی هست که فلک دیدم و در کین دل دانا بود، این میشه سه تا. یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و نسخ هست پین بوده که فلک دیدم و در کین من زاناب. از بوتان آن طلب ارهوس میشه ناست ایده کین کسی گفت که در علم نظر پینا آن یعنی اون کیفیتی که موجب جلب توجه اشخاص میشه بدون این که به خوشگلی خاصی یا عضو خواستی اشاره میشه، ولی جاذبه در شخص میمیزن آن از بوتان آن تلا بر حوصی ای دل این کسی گفت که در علم نظر بینا بود. دل چو پردار به هر سو دورانی میکرد و اندران داوی رسید